شده کن رجیم مخصول و زبون ترد شدم از عرش رود شدم به پست قردون مرا مهلت دادی تا پایان زمین پس بشنایم قسم آدم عبول بشر تا مهلت زمین من واقعی است آرام نمیشیند ابلیس پیش از سنا میفریدم و انواع فرزندان آدم را چون من رو اقلاف کنم به جهل قصر یبوتن این مأفل مقام بعد از نمرو توی تو Okei. Mitä ihmettä? Tuo on ihan hyvä. امینه باقل، مغر فرمانروایی نمرود بن کوش، بزرگترین دیار آن اطفال بود. نام این شهر بزرگ در قرن چهارم قبل از میلاد مسیح از تاریخ بر و وزیر خروارها خاک مدفون گشت. مردم آن سامان به پرستش اسنام دروغین مبادرت ورزیدند و نمرود را خدای خدایانش می‌دانستند. تان میدم به خدای خدایان نمرود خدایی داشتم که گرد و غبارش میروفتم دست نوازشگر قبار فرانم به این خدای مهنتت اسابت کرد و به بار آورد نفرینی ابدی برای من باز کنید راه را مگر صناعتگر خدایان بود تراش که رز بخت بد بخشاید باز کنید راه را آش می خورد هر سنگ بیابان به دست سخاوت این پیر راهنما و این بزرگ کاهن بابل مخطرات رقم می خورد تیر کنار می روند و آسمان بابل او جرا می و منور می شود چون آزر قلم می فرساید بر پیکره خداییت خدایان و خدایان نمرود به همین سبب هست که عزیزش میدارد به این دیار عزیز و گرامی ساخته ی دست من نیست این بک کار او بیسه بطراش است. تو شاعری هستی در تراش تراشگران چیر دستم ترابی <تص> مضمنت خدایی سازند همشهن کلامت Janii uh... چو ابراهیم سجده نکرد کی بارو در سودی تراش بود ابراهیم سجده نکرد برداخت او را بهت نکند مجازات می شود لوت تو ابراهیم را ندیدی؟ زدش نمکردازدار یه چاله مرفه تر بود تا خانه چه چرا باید سجده کنم به پای بنده ای که هم نوع من است گوشتی براستخان بس کن ابراهیم نیش تلخین زبان آشفت سر کرده نمرودیان را زین پس به ساعتت آذر نیز کارساز نخواهد بود داشتن فرزندی برومند را آشکار ساختی بر من او را واداشتم چون فرزندانم تراشتد کال بود سنگ آرام چه هنرمندانه وحکی چه زیبا تراش دادی ای کاش پدرت تاروخ زنده بود و میدی چه زریف میتراشید تو از دارم سری به تراش به تراش به تراش که جانشینم تو توهایی بود چه کردی؟ به چه شما می آمد؟ انگ را چیزی را پرستش میکنید که خود می تراشید؟ تو ص های آتییه آذری در سهناقارش سای عمون. تا این پس نمیتراشید می فروشید. خدایان را در بازار بابل به مردم عرض می داری. دارم رنگین و سیغل خورده ارزان و گران نمو ذرن نه من بیایی بیچاره سکه ای بود دارم بود دارم ارزان و گران بیایید از من بخرید چرا که سود و زیانی ندارند برای ارزان و گران بیایید آره چوپانی از این از من بخرید ام چرا که سود و زیانی ندارن برای چوپانی خوب داره از این زورد کردم تو را با اشت. گفتم برو من می شوی و سالار این صناعت بودسازی نه آفت و بلایش می تراشی بر عریقه این سنگستان بتراش تراش به تراش باز رافت و, و به خوشدلی به تراش با دستان بر اومندت این سنگ های سخت در آنسان که من میخواهم نرم و رام و آرام ساز به تراشت با دستانت این دستها ساخته کیست؟ سکه های گران پس من قدرت تو هم. من خدای تو تو باید کارنش کنی کارنش کن تو اگر بر بابلیان خدایی توانی کرد بر من نتوانی <تصفيق> کارنش کن کارنش <تصفيق> کن تختگاه نمروده است. این تخت نیست که جهل هست نمرود بر تخت که نزند که بر جهل بابلیان تک زند تو زرنگی اما بندازی که آگاه باشی جهل بابلیان خدا که این مردم بر جهل خیش می دولند می توان حکومتی فراتر از خدای بر جهلشان کنید پس جهل بندگانت حفظ کن بلاخره آزاد شدی؟ به جفای نمرود اسیر به بساطق آزار آزاد نمی ترسید خبرچین نمرود باشه؟ خبرچینان نمرود مهربان نیستند سره. از کجا می دانید مهربانی ساره را؟ نمرودیان را دستگیری نکنند تارستان کردی آزر این دست ها موجزه می کنند نمرود اگر تو را ببیند خداوی خیشت یاد نیبرد. برد جلایش این چو شد چند روزی است به کوهستان رفته برای عبادت عبادت عبادت به بر همین برادر من است ولی از من نیست به از می نیرم شاید بازگشت باشد تو چشمانم روت خستی هر پاک قولدادی آذر را مقلوب درگاه نمرود کنی محبوب. تو قولدادی بوت بزرگی را که با دستان آذر صناعت می شود هرگز به بوت خانه نرسد بوتی که من ساختم را در نظر نمرود گرامی داری سخت است اوبیس آن روز که از درگاه نمرود رانده شدی آذر نشان صناعت خدایان را از فرمان روای بابل دریافت داشت کلبته گردنش را سنگینی می کند نه در نظر دار اگر روزی آنچه را دیدم پاش دارم برای نمرود چیام سختی خواهد گذشت برد مرا تحتید نکن اوبیس اگر لازم باشد سنده به گورت تا دیگر هیچ نبینی فکران جایش را کردم اسرار تو را و امینی باز گفتم و سپردم اگر روزی به تیغ هارپاک حلاک شدم زحمت این مهم را او برای نمرود متحمل شود براموش نمی کنم روزی را که برای تفرج به جنگل شدم در لالوی درختان دیدم بسبی بلند باشد بوت به بوت خانه برود نکند حالا برو برز ای جانمان خوبه سبوت تراش از ما ما فاش خواهد گفت برای نمرود اگر رقیب تلایی دارش آزر را بدر نکنم از این میدان اگر گفت هم او را می هم نمرود را آره لاحا این جماعت اندیشه کردم دیدم همه پوچ پرستن پوچ انگار بشنو. درام لامه که خدایی می ما بندگان را ای ستارگان این دشت افلاکی که مالک فردای مایید مالک جان و مال ما و مالک ملک و جهان ما دریابید بید ما بندگان را چه می پرستید؟ حضورت آزار می دهد جان ما را مرشا از این جا. چه عجرام پرستش می کنید حالان که درخشان تر از زهر اختری در آسمان نیست من هم پرستش می که با شکوه و منفر است چه بر سر خدایم زهره؟ چرا افول کرد؟ چرا رنگ در برابر ما؟ نه من دیگر زهره نمیپرستم اینک ماه هست خدای من درخشان تر؟ چه میخواه از جان بندگان اجرام؟ دور شو از اینجا دور دورش دور شو دور شو من نیز بنده ای از ایشان افول کرد ماه نیز افول کرد خورشید سوزان سروری کند بروندگان دارشان دار را هفون بندگان اجرا خرشید نیز چون ماه ظهر زهر افول کرد این چه خداییست که افول می کند من خدایی پرستش میکنم که فنا نشد اجرام نیستند خدایان من خدا یعنی باقی نفانی در پی خدایی نو رفت آنها ستاره میپرستیدند اجرام آسمانی به اقوای رجیم. پس من قربانی میکنم در راه خدایان تا غصب نکنند که پای کودکم خدایم را شکست. و می‌دونید چست و چالاک پایش به بت اعظم اصابت کرد و در هم شکست. این چه خدایی است که یارای دفاع از خیش ندارد؟ کودکی از پایش در آورد نمیدانم خدای تازم این نیمه شکسته است. یا فرزندم که خدایم شکست آخرش همه مخلوق تو را مدبر آلم دانند که ندارم تو ی هستی همه جا حاضر نازن نازن آزن جهلشان آشکار نمی جهلشان آشکار نمی‌کنی من که دانم هستی موجود داری قدرت داری پس چی بگو نشانی که میشنوی کلامم صدایم را میشنوی صدایم را میشنوی پاس وقت نداد برای مرا یاری کن یاوریم کن که یاریش نکنم منم جبریل پیامدار ملکوت خداوند تو را به رسالت برگذید تا رسولش باشی بر اقوان و اکتار بشن دانم که شرک میبرزنده و انکار می دارند ربوبیت فرمان روای آفری مشرا خواهی آمود تریفت این خواهی است این که میرساند سلام آدم عبول بشر را به تو ابراهیم حیان بر خدا صدت خراب می کنم هر خداوند یکتا هستم بر شما قوم بابل ابراهیم چاندی شیدار سرداری این سر پر سودا سر سرمازده خوب است التماس پس التماسات می کنم. خوب است داری پس داره می کنم آرامش من ملعبه دست تو نیست ای بر سه روز دیگر مراسم اکرام خدایان است روزی خوجست و مسعود که آمدنش را روز از فیر روز سبوری کرده خرابش دکن هزار. هرگاه بخواهید این جماداتی که شما بط میخانید خدا؟ میشنوند سخن شما را؟ به حال شما سود و زیانی توانند داشت؟ ما پدران خود را در پرستش این که خدایان یافتی. هر چند جماعت و اثر ولی باست میپرستیمشن پرستش میکنم همون خدایی که آفرید مرا و هدایت میفرماید و التاف خیش همان خدایی که به کرم فیش قضا دهد مرا چون گرست نشدم سیراب کند چون تشنه شدم شفا دهد چون بیمار شدم همان خدایی که میمیراند مرا و سپس زنده میکند به میوی عبدی آخرت همان خدایی که چشم امید دارم دنگام رستاخیز بیامر زدگناهانم را Oh, oh, more than that about us. خیانت کسب هست کسب هست کسب این مرد سراپا کسب و ریا و فریب بیرونش کنید از درگاه توته در سر دارد دور شده از تختگاه من اون دور می شدم وزیر معزدان اما وقتی دور می شدم که راز خیانت هارپاک را به خدایگان بابل بازگویم و راز آن جنگل مفرد آشکار به Man... خدایگان بابل سویند تو را میکشم ببریدش <maintenant ouv> <production> <pedis> نمرود بزرگ مرا بخاشید اما ببزارید بازگویم این راست آهایش <öd> کارید <kilo> <Lauren Fatunde> شنو ناز ز هر انتقام در سینه داند سر آن دارد خط شدار کنه حریم فرمان روا را او روز پریده بنیات تفروت به جنگل درآمد آن پس انسرت به سبب انتقام خون پدرش به تو خیانت یرد نمرود تا حکومت بابل با نفوذ حرباک براندازد. به تو خیانت رود نمرود مجالشان نده مجالشان نده نمرود بسیار خوب بیس شنیدم. نیستم من در این بازی نیستم دیگه نه دیگر نه. نه. من نیستم. فی... تمام می کی تو این بازی را تمام می کنی هار پاک او بهش گفت از ما را اگر ش خالی کنی از آن چه بعد کرده ای با طرپندی زنانه نمروز را ب کشن تو با میدارم مش <تصفح> میخواستی انتقام عشیره و پدرت را بگیری؟ انتقام <تصفح> من فرمان برداری خدایگان را می کند مرد من پایه های حکومت بابل را متزلزل می کند من را نکش ایلتو باز می بابل به تو نیاد دارد جام بدل کن بزیرک تو هنوز بزیری بخش برام داد من اگر جایتا بودم به اوبیس را اپنه به مراسمه اید می با ما همراه نمی شوی ساره نیز با ماست نه بیمارم توان برو لووت؟ ولی بشریات الهی است مصلحت است تو امر بقام بعد از نمرو توی توی کستی تو من نابودگر خدایان صدایت خوفناکی اما حضورت آزارم میدهد چشمانم سونه دارد دیگر کیستی که ترک گفته ای مراسم ایده خدایان را اگر نزورات آوردی بکسارو برو چرا نمیخورید تاام؟ چرا اصلاً خوردن نمی کنی؟ تصور میکنید در هم شکستن خدایان کار من بوده؟ تنها کسی که از شهر برون نشد برای مراسم اکرام خدایان تو بودی ابراهیم برادرزاده آزر بودتراش بابلیان نیست دیدند تبر توست ابراهیم تبر را بدهید برید ما دستی که تبر بر پیکر خیش بکوبد همگر از تبار آذر باشد سرشنیدم با غریان تبری یافتند بر دوش بطه بزرگشم کمان نمیبرید این کار کارستان بطه بزرگ بوده؟ از او بپرسید چه بر سر خدایان کهتر آورده؟ همه میدانند خدایان قادر نیستند به کلام از آنان ساگه تر سوان حرکت هرهی هرهی شما خدایانی را می پرستید که قادر نیستند به کلام و شما تمسک می به خدایانی که برای این سرزمین و اهلش نفع و ضرری ندارند حالا که شما از حقیقت وجود خداوند یکتا که در حیطه قدرت اوزتر نفع و ضرری واماندید آف بر شما آنچه پرستش میکنید پس حقیقت دارد ادعای پیانبری تو محیاوشا ماده تو تمشی می و یافت. او هی سومه این پایان دار. سوزان دشابت. خطا عطن به بازارد. در ماراسمه سوزوندان بابلیان حاضر شوند. همه او بیس منم مغلوب تو آذر. راز را تو بردی در آرگاه هم را می فروشن. دیگر رقیبی نداری سرمایه ی زندگی هم را می سوزاند شفاعتم دیگر کار ساز نیست از چشم هم رود افتاده نوبت نوبت توز که کن. تاخت کنید بتاست. بتاست. بریادر از خدایت تا برهانت تو را از این محلکه جرار کجاست؟ منم ابراهیم تیامبر خدای پاک و یگانه آنچه جز خالق یکتا پرستش میکنید خدایانی جمادند و بی اثر که با دستهای خیش اید. بدانید آنکه را جز خدای یکتا میپرستید قادر نیست بر رزق شما هایشان کنید این خدایان دروغ این را روزی را از خالق طلب کنید و خالق پرستش کنید نه مخلوق Se kuunteo hele nor shavadin voit se تبر خدا نیستن من ساره همان خدای پرستش می که تو مرا با او به سوزانی که من هم تبر دارم. این بار با نمرودی میشه کنم این بار با خانه نمرودی در ح میکنم. بیا؟ <تصفيق> نزاده شده و نه میزاید حیات و ممات در احاطه قدرتش کریم است مهربان حلیم است همان که زنده می کند و میمیراند جان می دهد و می ستاند فرمان خدایگان دو محکوم به مرگ را مهیا کنید به زندان میرووین این بوت شکن نیست بیآید بازاشکن شرم علی دی دی کی جان دیگری حیات دوبارہ بخشیدم ای من بالاترین است که در تسخیر قدرت اوست مه و خرشید خداوند هر روز خورشید را از خواهر تا تو اگر توانی خورشید فردا را از باختر بیرونار تمامش کن از بابل برون شو بابل ترا نمی خواهد برون شو در بابل جولان دهد بر بلندهای برج بابل خواهیم شد با خدای ابراهیم به نورد شدیم زیرکی هربک راست میگفتی در باب کرام تو اندیشه کردم گفتی یکی از پایه های حکومت نمرودی امروز بر روی بابل شدم تا قدرت متنخ را نشان بابل یادم تیری رها کنم تا خدای ابراهیم مقلوب شود و دیگر آن پایه حکومتی را که گفتی برم دازم وزیر پیشین به منزلت ما چشم داشت و تو سردار جوانی بودی که جو خود ای وزیر شکستی جالشین شدی به لیاقت به درایت قافل که از راه او به بیراه رفتیم بیانتی مصاف اگر به تو رحم کنم نیستم دیگر خدایگان چه میخواهم بگوین؟ نمرود قدرت متققه است وزیر نمیخواهد بلنده است خیلی بلند موج را میگویم هرپاک چگونه با خدایگانش ودا کنند؟ خدایگان! مرا ببخش! خدایگان! نه! مرا ببخش! نه! نه امروز مرا ببخش! خدایگان! مره مره ای از خدا یاد بگو مرد. لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا Mä oh, oon oh شوی مناسبی هستم من یار رسالت خواهم هستم هستید هجرت میکنم به سوی خدای خیش که او مقتدر و داناست به اصلاح اموره بنده هاجر اشنام و هاجر کنیز ساره بود تا آن هنگام که ابراهیم وارد شد به هبروم و به پاداشت و مزرعی برای معیشت هیچ صدایش رو نمیشه نوی کدام شده ونگ ونگ یک بچه ونگ ونگ یک بچه ما بدون ونگ ونگ یک بچه هم رو دوست دارم شاید. من عاشق تو هم ابراهیم شبین مخواه میخواهم حالا میفهمم چرا جبراییل از جانب خدا بشارت داده بود ما بزرگی فریدایم از مسلمان این وعده خداست شهوت می راندند و در هم می امیختند سرزمین سیاه و مردمانی سیاه تر می دانم خالق یک تا را برگزیده تا به دیار سدوم نزد قوم فاسق و بدکار بروی و آنها را بازداری از اعمال پریدشم این کلام وحی است ولود برگزیده شد اما اونگونی که امویش ابراهیم برگزیده شده بود برای رساله خدای گلستان شد بر من کسری خواستم پاک و متحر قائم و جانشین رسالت فرزندی که بر تعین بندگان خداوند از نسل او خواهند بود ابراهیم فرزند تاروخ است تاروخ نیز فرزند ناهود فرزند سروچ فرزند راعو است اصلا فرزند راعو است راعو فرزند فولج فولج فرزند ادی فرزند آبر فرزند فرزند شاله شاله فرزند الفقشاد الفقشاد فرزند سام و سام فرزند نوه نشد <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> زیمان من آب ریختم بروشنایی هم... هیچ حاجتی نیست به کمک تو روشنایی تو من نمیخواهم کنیز تو کنیز من نیستی تو همسر پیامبری همسر پیامبری معیز شدی از عشق من نبی خدا تاریک شدی از عشق من یه از ترفند شیطان است مدخل تسلیم عشق است برای حضور من برای رسالت من سادر آتش سادر صد پله سوزانتر از آتش نمرود است Kuri stoneško. تمات رود دفاع بر رسولت دور کرور آسمان پسرت اسمابی و حسرت حامجم خروج میدهی از زمین و شلی میتونی به سرزمین می‌آمدنت اجع. باشه شما اینجا بمانید و من در پبرون این پیام بسما بویاتون کدام این اینجا را صفا گویند تپرا مروه این دو را گفت به هنگام ور مطرف میشم نداریم برای حوت خودا رحم کن پیام بر به کود این اینجا خوشگم سوزا مکان را محلی ام براده من زرگیم را به بادی بی و زر نزد بیت الحرام تو مسکم دادم برای بفاداشتن نماز پروهدگارا مایل گردان قلب های مردمان را به سوریان ها و روزیده و انواع سمرات آن را باشد که به جای شکر نمادن شون کن آنیام که نخواستند گانفیش را با آتش میافکندند در متخایشان چه باری کنم که گربوش را هرکس کشتن گیرت پسران فیش را لام آری شود از هلیت نسل و رقا. Hyvää päivää. Mitä mieltä olet, että olen استمان هنگام که تو تفلت را در برهود رها کردم و رفتم چه برسرتان آمد رحمت خدا ایمان داشتم چون فرمان ربوبیت بود به هجرت شما سال هست که میگذارد از اون روز کار تیزوزند فرده دشتگی تازیانه های آفتوبه هجاز آن تپک که صفان آمد و آن دیگری که مرفش گوید کودکی نیمه جا آبی که برای نان میزنی نبی خدا از چاه زمزم فردا روز زغربانی است برای معبود اکتاب بهترین شیر مست گله را مهکیا کنم برای قربانی قربانی در قربباندا مایه است به کوه من با مادرت بدا کن فرزندم So multimassamaan poудua福irien Se kore tus kohonki به قربنگاه می کشانی بر تو ابراهیم که جرحومیان به خونتش نشبم حقا که ننگ این فرزند باشید تو را دامن گیرد به پیام سالیانی که باید در کنار تو می بودم نبودم شکفتن این وعنهای ملکوتی را ندیدم امروز باید تو را در گروانگاه بیا کلام بهی بود فرزند هیچ وقت تردید نکردم فرمان خدای یک جارا میفهمی؟ صورت به خواب بدر. تا تاثیر نگاهم باز ندا تو راغ از انجام میماه. پرر بار باش بدر. یا طاوم ترش یا رب به نام خالق یکتا Oh, oh. سپری شد تا اصحاب دنیا آمد با خدا وح کرد ابراهیم را برای یا آخرین مموریت الهی ساخت که خانه خدا تو جانشین من خواهی بود پیام برای این قوم اه. تو بوی احمد میدهی نگین انگوشتری رسالت سلام مرا سینه به سینه به او برسده ما توانه ساخته چنین بنایی داریم پس <تصفيق> دبا از که عاشق باشی؟ یا دل مشغوله به دنیا من عاشق بده رو عاشق خدا پس می توانیم تصییری تیز که پربرگوار در روح ما نهاده جسم ما فرمان روح را می‌راند ارواح تو عاشق فرمان می‌دهد باباک اللهم لبیک باباک اللهم لبیک کعبه ابن بنای توحیدی ساخته شد به داستان ابراهیم خلیل الله و الله. سلام بر ابراهیم که عمر خویش وقت نمود در راه توحید سلام بر ابراهیم که بنان حاد خانه توحید را سلام بر لو سلام بر اسماعیل و سار سلام بر حاجر و ساره و سلام بر آنان که امروزه به مناسک حج ابراهیمی در آمده ابراهیم خلیل الله دومین پیامبر اولو العزم با کتاب آسمانی سحف یادش تا ابد گرامی